دهکده سرسبز و زیبایی بود و سرزمینی خوش آب و هوا که چهار فصل را در میان خود داشت. بهارهایی دلنواز و روح بخش با بارانهای ملایم، نسیمهای آرام، فضای سرسبز و گنچه های شکفته شده. آنقدر زیبا بود که هر کس ساعتهای دراز به این منظره ها دل ببندد و تابستانی گرم اما با برکت که درختان را بارور میکرد و محصولات زرایی این دهکده را می پرورند. و ثروتی برای اهالی این روستا به بار می آورد پاییزی آشغانه با برک ریخته و زرد در سراسر دهکده و سرآخر زمستانی سرد که روح تازهی به دهکده می آورد و همگان را به این وامی داشت که هنوز زنده اند. این تغییرهای ناگهانی هوا به آنها زنده بودنشان را هشدار می داد این دهکده هرچند که کوچک بود اما اقلیمی پر از تفاوتها و زندگی در خود داشت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 از آن دوردستها شرایط این دهکته چنین نبود هرچند از ابتدا هم بودند کسانی که با رندگویی گوی ثبقت را از دیگران میگرفتند و اینگونه جامعه را به دو دسته تقسیم میکردند قشی که ثروت هنگفتی داشتند و در رفاه زندگی میکردند و قشری که از بذاعت کمتری برخوردار بودند و همواره در پی رزق و روزی جان میکندند و به هیچ منزلی دست نمی نمییافتند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 آنها که دورترها به نظام خاصی پایبند نبودند و آرام در کنار هم بدون هیچ نظم و یکپارچگی زندگی در آسایش تو انبار رفاهی را تجربه می‌کردند یعنی کسی نبود تا به آنان حکومت کند قدرت کسی از دیگری بیشتر نبود و این ثروت عادلانه تر میانشان تقسیم شده و آرام تر زندگی می‌کردند بی قانون اما در هر جمعه زندگی نمی کردند زیرا از گذشتگانشان همواره هایی را آموخته و بر آن پایبند بودند می‌دانستند چه کاری زشته است و چه کاری نیکی و سعی در اجرای همین ها داشتند درست است که درون این ها هم برخی اوقات هایی پیش می‌آمد لاکن با ریش سپیدی و پادرمیانی هر گونه اختلاف و مشکلی میان آدمیان این دهکده مرتفع می‌شد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 روزی که دنیایشان را تغییر داد در آن دور دست ها جایی که کسی فریاد یک تا پرستی و پرستیدن خدا را سر داد، آنها نیز شنیدند و به خود گفتند ما هم خدا را می پرستیم. اما حال در اشکال و آیات مختلف این پرسیدن های ما شخصی و در خانه هایمان است. آنگاه که ظلمی به رویمان هموار می شود به خلوت می رویم و ساعتها با خدا درد و دل می کنیم به زمین میافتیم و از او کمک میخواهیم و او با آرامشش ما را آرام میکند گهگاه دل مان میگیرد با او هم کلام میشویم دست به دعا میداریم و دلتنگیهایمان را با اشک چشم از جان میشوییم و او چه صبورانه در کنارمان میماند و به حرفهایمان گوش میدهد لیکن این خدای همواره نهفته در قلب هایمان را به صحن اجتماع نکشانده و نمیکشانیم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 ارزش‌های تازه‌ای برای آنان ترسیم کند این ارزش‌ها را به قانون و عمل کردن به آن را تکلیف هر تن بداند و سرپیچی و تعدی از این قوانین را کیفری سخت بدهد حال خدا به زبان نمایندهاش از دنیای تازه‌ای سخن می‌گفت تا آن روزها در میان دهکده آدمیان برای همین روز و همین دنیایشان سخن می‌گفتند و زندگیشان در همین دنیا خلاصه می‌شد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 شاید هیچگاه آن را به زبان هم نیاورده و فقط و فقط گهگاه در قلبهایشان به آن فکر میکردند. از این رو و چون میدانستند دنیای دیگری نیست تمام اون را صرف همین دنیا و بهتر زندگی کردن میکردند. باور داشتند که پاسخ کردار زشتشان را در همین دنیا خواهند گرفت و برای این مدعا هم مثالهای ریز و درشت بسیاری داشتند. جوری که از این مثال ها های ریز و درشتی ساخته تا به همدیگر دیگر بفهمانند که دنیا دار مکافات است و پاسخ هر کردار در همین دنیا در پیش روی آنهاست اما حالا خدا و نماینده ناطقش بر زمین دریچه ای این رو به آدمیان باز نهاده و به آنان از آخرت میگفت از جاودانگی زندگی پس از این دنیا و خداوند و قضاوتش،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 و پیامبری که تک تک سوال ها را با اذن پروردگار پاسخ میداد ولی شاید بزرگترین سوالی که ذهن مردمان دهکده را پر کرده بود این بود که کی و چگونه آخرت اتفاق خواهد افتاد و پیاماوری که با حالتی روحانی و خاص کلمات خدا را به زبان می آورد بدانید و آگاه باشید که جهان را زشتی فراوان خواهد گرفت اتفاقاتی پیش روی شماست که کسی از زمانش با خبر نیست به جوج خداوند وجل،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 آیا انسان است آیا دیو است یا پری که پاسخ این سوال ها از جانب رسول نبود و در پاسخ اینها تنها به همین بسنده میکرد که عالم غیب تنها از آن خداست و صلاح نمی داند که اینها را با آدمیان در میان بگذارد اما به آنها خاطر نشان کرده بود که ناجی هم مثل رسول خدا انسانی است با همین وضع و حال که نجات دهنده ی همه آدم ها از دشتی و درد است حال مردمان این دهکده سخنها را شنیده و کم کم به آن باور و ایمان پیدا می‌کردند. در میان های بزرگ و کوچکشان به صحبت می‌نشستند و بحث می‌کردند، برهان می‌آوردند و کم کم دوست داشتند از آن زندگی بی‌هدف در گذشته به زندگی منوط بر آینده‌ای معلوم برسند و به هدفی بزرگ دست یابند. دوست داشتند زندگی قدسی را پیشه کنند و به الوهیت پیوندند و این آرام‌آرام آرام میان مردمان در حال پیشرفت بود.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 پایبند بمانند و به راهش عشق بورزند و این شروع زندگی تازه مردمان دهکده بود. پیامبر به دستور خدا حکومتی تشکیل داد تا نظم را به این جامعه کوچک انسانی هدیه دهد. خیش به عنوان رسول و پیام خدا در مسند قدرت نشست و پادشاه آنان شد. البته خوب خاطرم نمی آید به او امیر، خلیفه، پادشاه یا ارباب می گفتند. اما او پادشاه آنان شد و خداوند که قوانین و احکامی را برای آدمیان به زمین میفرستاد و پیامبر آنها را به زبان میآورد. برای هر کردار زشتی کیفری در نظر می گرفت. قوانین مستحکمی برای هر کار انسانها وز می کرد و پیامبری که به عنوان جانشین خدا مسئول بر این قوانین بود و در طول عمر هم به آنها عمل می کرد و نظام ای را به جهان آنان بخشید حال دهگدهی بود، قانون، پادشاه و نظم اجتماعی داشت پیامبر در طول حیاتش برای مردمان نطخای غرایی می کرد و آدمیان از روز قیامت می ترسیدند. آدمیان را از کارهای زشت برحضر می داشت همواره از قدرت خدا سخن می گفت و اینکه که انسانها بنده خداوند هستند و خدا ارباب به سراسر جهان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 آنها از پدر به پسر وظیفه را محول می کردند و دومین بدعت این بود که نام این والی و امیر دیگر مشخص شد. همه او را ارباب خطاب می کردند و ارباب نام نهایی بر این پاد شاهده کرده شد. هر چند به واقع هم نمی شد نام این دو اتفاق را بدعت گذاشت.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 طی سالیان دراز در این دهکده اتفاقات ریز و درشت فراوانی افتاد تا اینگونه اجتماعی ساخت شود. امروز این دهکده یک کهان عربابی قدرتمند در خود داشت که بر تمام اتفاقات دوران نظارت میکرد. حکم او ختم تمام سخنان بود. قانون وزمی میکرد و مردمان موظف به اجرای آن بودند. قانونی که مطابق با شریعت و فرموده های خدا و ارباب بود.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 آنها با استفاده از اسناد و صحبت و اتفاقات گذشته شریعتی را پایریزی کردند و در ساختمانهایی مجلل نشستند و جدال کردند و زندگی خوب و الهی را پیش بردند. در این قصرهای با پذیرای مردمانی بودند که دست به دعا برداشته با خدا صحبت داشتند و به درد و حرفهای آنان گوش فرامی دادند.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 نکته قابل توجه در زندگی این دو بخش از جامعه از روحانیون و آلمان دینی و ارباب بزرگ که به انسانهای این دهشده حکومت می این بود که آنها کار و وظیفهشان همین بود. ارباب عربابی کردن و آلمان دین بشارت دادن و آدمیان جز اطاعت کار دیگری نداشتند. آنها مثال دیگران کشاورزی نمی تولید نمی نمیفروختند و مردم از حاصل دسترنجشان با عناوین مختلف به آنها روزی می و این جماعت در کاههای عظیم زندگی می کردند و از رفاه بسیار بالایی برخوردار بودند. و اما مردم این دهکده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 اکنون دهکده در دل مردمانش دو دسته داشت کسانی که صاحب نام داشتند و صاحب همه چیز بودند و ثروت و مکنتشان به آلمان دینی و ارباب نمی رسید لکن صاحب عراضی، خانه ها،, دکان ها و تمام دارایی های دهکده بودند اینها را صاحبان می گفتند.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 اما این جماعت بیچیز برای امرار معاش و زندگی نیاز به کار داشت و مجبور بود برای صاحبان کار کند و لغمنانی به دست آورد و این گونه شد که صاحبان کم کم به واسطه ثروت هنگفتشان یکتن و کم کم ستها و هزاران نفر از بیچیزان را در اختیار گرفتند و عراضی خیش را آبادتر کردند و هر روز نداران را ضعیف و زریفتر به هست در آوردند و بر و خیشتن افسودند و در این نظم به پیش بودند بیچیزان را به جایی می رساندند که دیگر نیازمند به صاحبان بودند و شریعتی که اجازه این کار را میداد و نظامی که اینگونه برای آنان تعریف شده بود نظام قدرت و ضعف، قدرتمند و ضعیف، خدا و بنده، ارباب و رعیت و سرآخر صاحب و برده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 عرق می به میان کوه‌ها، غارها و معادن می رفتند چه بسیاری از آنها که در این راه جان دادند و در میان این معادن در خاک مطفون شدند و جماعتی که سرآخر گوهرها را بیرون آورده به صاحبان تقدیم می کردند و در ازای آن لغمنانی می تا خود و خانواده های کوچکشانی که در اختیار صاحبان و به ازن آنان نفس می کشیدند، سیر بمانند و صاحبانی که هر روز در رفاه بیشتر قوته میخوردند این گوهر و دورهای گرانبها را به دیگر شهرها و دهکده های اطراف میفرستادند یا به دیگر اربابان در شهرها میفروختند و پول بسیار به جیب میزدند و سهمی از آن را برای ارباب بزرگ دهکده با دستبوزی میفرستادند و از او متشکر بودند که چنین اجتماع پر از رفاه و امنیتی را برایشان ساخته بود و بخشی از این مال به دست آمده را به سوی آلمان دینی می تا هم خدا را در راه بشارت انسان یاری دهند و هم گناهانشان را به واسطه این بخشش و کمک در راه خدا ببخشایند و بردگانی که در ها و خاک و خاشاک با فرزندان سر و رو سوخته و زرخریده صاحبان با زخم‌های بار دست و پایشان لغمنان خشکی در آب اوتور می‌کردند و از خداوند بزرگ به خاطر نعمتش سپاس می‌گفتند بعضی اوقات به درگاهش ساعت‌ها اشک می‌ریختند و با التماس و کنان به یزدان عرض می‌کردند بار ناجی ما کی خواهد رسید کی به این جهان پا خواهد نهاد تا زشتی را از جهان ریشهکن کند آنان با خدا حرف میزدند و درد و دل می‌کردند دنیا را در آن قصرهای عالمان دین می‌جستند تا روز موعود برسد و بتوانند دست در دست هم به محضر خدا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 هر جا که نگاه میبردی بردگانی در حال کار سخت بودند بالاتر از آنها کمی دورتر صاحبی نشسته و پول میشه و انبارهایش را پر از غلات و گندم می کرد و هر روز از پیش ثروتمندتر تر و قدرتمندتر میشد. عراضی کشاورزی بسیاری در این دهکده وجود داشت. خاک زرخیزی داشت به گفته گذشتگان هرچه در آن بکاری حتما روی میدهد و جوانه می زندند. از این رو کشاورزی در این خاک سود سرشاری داشت وقتی به میان این اراضی می رسیدی مردمانی جندپوش پوش می دیدی که زیر آفتاب به سختی کار می کنند و رنگ و رخسارشان کاملا دگرگون شده است و به سیاهی بدل می زند. از این رو صاحبان گهکا آنها را کاکاسیاه هم خطاب می کردند. آنها با تنهای سوخته اندامی لاغر و نحیف می چیدند و می کاشتند حرس می کردند شخ می زدند. اما کمی بالاتر در زیر سایه درختی روی صندلی زیبا مردی چاقد و روشتندان نشسته است و آرام به سیگار در میان انگشتانش پک میزند در همین بین است که یکی از برده ها به زمین میافتد و خوشه گندمی که در دست دارد را به میان لجنزار میاندازد و صاحب که عصبانی و پرخشمه است به بردگان در اطرافش فریاد میزند و سراسیمه از جایش برخاسته به سمت آن مرد لاغرندام که گندم ها را فنا کرده میدود و زربات محکمی به پهلویش وارد میکند. و پس از آن دست بر کمربند شلوارش میبرد آن را بیرون میکشد و مرد رنجور زیر تازیانه زج میکشد و نفس در سینه دیگر بردگان حبس شده و چیزی نمیگویند. شاید این اولین بار نیست که این صحنه را دیدند اما شاید مثال اولین بار برایشان دردآور باشد و شاید چندی قبل این کار هیچگاه اتفاق نمیافتاد. اما اولین بار و این سکوت چنین پیش برد که این کارها عادتی برای صاحبان و تحمل این دردها بخشی از زندگی بردگان شده است. تاب ناجی اثر نیماش بخش دوم ناجی میخائیل که به سختی بدنش درد میکرد توان ایستادن و بلند شدن از زمین را نداشت آفتاب مستقیم بر روی چشمانش میافتاد و چشمانش را بسته بود و در میان خیالهایش مردی زیبا با چهره ای بشاش میدید که صورتی نورانی داشت عبروانی پرپشت، موهایی بلند، دماغی کوچک، و لبهای زیبا و موزون و ریشهای یک دست که جوگندمی بود میکایل چشم بر چشمانش دوخت آرام می دید که به سویش می آید. زیر لب گفت سرورم شما؟ مرد زیبا روی آرام لب گزید به نشانه خموشی میکائیل و آرام آرام به سمتش آمد در حالی که به او نزدیک می شد گفت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 آقا اسحاق یعنی صاحب این اراضی همان مرد چاقی که چندی پیش میکایی را به سختی ضرب و شتم کرد این استبل را از حیوانات توهی کرده و پس از آن رنگی به سر و رویش زد و چند تختخواب به تعداد بردگان و میز سادهای برای خوردن غذای آنها تدارک دید این هم از رفت و بزرگی آقا اسحاق بود البته این چیزی بود که بیشتر روزهای موعود بردگان از میان قصر خدا از زبان عالمان دین میشنیدند و در کنار آن همیشه یعقوب مرد مقدس میان خانه خدا برایشان از روزگار سخت دیگر بردگان میگفت و آنها را بشارت میداد که صاحب ساق چه مرد مهربان و خوبی است هرچند که با آنها رفتار خوشی نداشت و گهگاه گاه کتکشان میزد اما نسبت به داستانهایی که در پاره دیگر صاحبان و برده‌ها می‌شنیدند، صاحب اسحاق مرد خوب و درست کاری به نظر می‌رسید. در حالی که میکائیل به سختی از درد بدن مینالید، دانیال و داوود او را به روی تختش بردند و آرام خواباندند. داوود که خیلی کلافه و عصبانی بود فریاد زد این نمک به حرام زندگی را برایمان زهر کرده. دانیال به او اشارتی کرد و گفت آرام باش.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 خیلی به هم احترام میگذاشتند و عاشقانه با هم سخن میگفتند و سرآخر میکاییل دست به دعا میشد شب را تا صبح بیشتر اوقات دعا میکرد با خدا سخن میگفت و همیشه از آن داشت زمانی که با خدا خلوت میکند آرامش میگیرد از این زمین خاکی دور میشود و به آسمان اروج میکند و عاشق این لحظات از زندگیش بود و حال به واسطه این کمخابی ها و کارهای سخت امروز حتی با وجود دردهای بسیاری که به داشت آرام به خوابی امیغ فرو رفت و چندی بعد دانیال و داوود از اتاق بیرون رفتند تا به کارهای روزانهشان مشغول شوند و او برای کوتاه زمانی هم که شده به آرامش برسد آنها اخلاق صاحب ساق را خوب می شناختند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 فقط مشتهایش را گره کرده و گویی در انتظار فرصتی است در همین حال دانیال محکم دستش را گرفت دست سرد دانیال وقتی به دستهای داوود خورد صورت برگرداند و به صورت سفید شده ی دانیال چشم دوخت و تازه به خاطرش آمد که چرا دانیال تا این حد مسترب است در حالی که با سر اشارتی برای دانیال داد تا از استراب او بکاهد صاحب ساق به او ذروتی زد چیزی شبیه به هول دادن. آنقدر قوی نبود تا هیکل تنومند داوود را تکان دهد. داوود هیکل درشتی داشت. پوست صورتش مثال دیگر بردگان به واسطه کار کردن زیاد زیر آفتاب سیاه بود. موهای صاف و کوتاهی داشت با چشمانی درشت و شاید تمام وجودش خشم شده و دیگر تحملی در جانش نمانده. دست موشدهش را سعی کرد که بالا بیاورد. دانیال با تمام توان از این کار جلوگیری کرد و در همین حین و حال صاحب ساخ فریاد زد بی عرضه ها کجا مانده اید چرا اینقدر لفتش دادید مگر به شما نگفته بودم که از زیر کار در رفتن پدم میآید آن مردک را میانداختید و زود باز میگشتید به آن تنلش هم گویست کنید که فردا صبح باید سر کار باشد در غیر این صورت جیره غذای خودش و همسرش را قطع خواهم کرد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 به واقع که زمینهای بزرگی بود در این دهکده بزرگترین اراضی کشاورزی در اختیار صاحب اسحاق بود او یکی از ثروتمندترین مردان دهکده به حساب می‌آمد. در طول بهار و تابستان کشاورزی در زمینهای بیشمار و بزرگش بردگان را به کار می‌گماشت و در پاییز و زمستان این محصولات انبار کرده و دیگر کالاهای تجاری که از این آن سوی صوب جهان می‌آورد را به دست بردگان در میان بازارهای شهر میفروخت و با این کار هر روز بر ثروتش میافزود و شاید از زیده برخی او ثروتمندترین مرد دهکده به حساب می‌آمد.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 یکی از حرفهایی که در دهکده بین مردم رواج داشت این بود که اسها به واسطه داشتن تعداد بیشمار بردگان حتی تعداد آنها را هم نمی‌داند چه برسد به نام و این یکی از خسیصه های اخلاقیش شده بود که نام هیچیک از برده ها را به زبان نیاورد همیشه آنها را برده خطاب کند و البته دیگر القابی که روی هر کدام از آنها به واسطه برداشتش از خصوصیات ظاهری آنها میگذاشت و آنان را با آن نام خاص خطاب می‌کرد اما با این وجود او ترین صاحب در این دهکده به شمار نمی آمد و برای بردگانش خانههایی هر هرچند از طویله پیشین ساخته و به آنها سر وقت غذا میداد و تا حدی به نیازهایشان رسیدگی می کرد و فقط زمانی آنها را کتک می زد که از زیر کار در می و در انجام وظایفشان کوتاهی می کردند و خلاصه که به منفعتهای او ضرری می رساندند. اینها در برابر دیگر بردگان که در دهگده نقل می فلان ارباب جهکاه برای تفریح و سرگرمی خود و خانوادهش ما را داغ می و به سختی کتک می زند. در برابر چنین تعریفی صاحب اسحاق چهره بهتری به خود می گرفت صاحب اسحاق در میان همین قلم روی بزرگ و بیدر و پیکر قصری بزرگ داشت مشرف به تمام نقاط قلم رو. به زیبایی تمام کاخهای شهر نبود مثل قصرهای پیشوایان دینی و صد البته ارباب بزرگ شهر، لکن خانهاش هاشکی از زیباترین قصرهای ده‌کده به حساب می‌آمد. ایوانی بزرگ و سفید رنگ که هایی از دو سمت به رنگ طلایی داشت. هایی بزرگ و طویل که از سقف تا زمین را می پوشند. پله پله‌هایی که به درب ورودی این کاخ اشرافی می‌رسید. دربی با مجسمه‌ای به شکل شیر برآمده به عنوان دستگیره. وقتی وارد امارت می شدی پرده های بلند و اشرافی تلاکوب تو را مجذوب خود می و زمینی که همیشه برق می زد و می درخشید. از شمار فراوان برده ها بیشتر زنان به داخل امارتش کار می کردند. از نظرش زنها برای کارهای خانه مناسب تر بودند و این شمار بسیار وظیفه داشتند از صبح تا شام خانه را پاکیزه و تمیز کنند و وای از آن روزی که چشمان تیزبین صاحب ساق لکه در خانه میدید. آن وقت بود که روزگار این جماعت تیره و تار می شد. از این رو بود که همیشه خانه برق میزد و پاکیزه بود. راهروی بزرگ در میان خانه چشم نوازی میکرد. بیشتر طبقه پایین به جز آشپزخانه بزرگ که مسئول پختن غذای شاهانه برای اسحاق و همسرش و پختن غذایی بسیار برای سیل بیشمار بردگان داشت سالونی بزرگ و زیبا نیز در این بود که در بشه از آن میز بزرگ نهارخوری خوری چوبی چشم نوازی می کرد و باقی سالن را مبلهای سلطنتی، میزها و لوکس و عتیقه پوشانده بود. اما میان این سالن بزرگ در بشه چسبیده به دیوار انتهایی تن پوشی از اکس های مختلف مانند آلبومی بزرگ بر دیوار خود نمایی می کرد. این دیوار که از همه سوی سالن قابل رویت بود عکس بزرگی از ارباب بزرگ دهکده در سر داشت. کمی پایینتر تمثیلی شبیه به پیامبر دورترها و در کنارش عکس پدر و پدران اسحاق جای گرفته بود این آلبوم بزرگ بر دیوار این امارت جلال چند ای به این بنای کهن داده بود قاب ها از طلا بود و مزین به هنر کندهكاری شده بود و نمایی چندان به عکس درون خود میداد آن پله های و طویل ما را به طبقه بالایی این امارت میرساند که سرتاسرش تا سرش را اتاقهایی مجلل پر کرده بود. یکی اتاق کار اسحاق یکی اتاق خواب او و همسرش، یکی اتاق میهمان و صد البته بسیاری اتاقهای دیگر که زیبنده تمام این اتاقها اشیای لوکس و عتیقه میان آنها بود و به زیبایی آنها افزوم می‌کرد. گاه به شکل تمثیل و مجسمه گاه به شکل گلدانهایی بزرگ و زیبا گاه فرشهای دست باف دیوارها. اما چیز دیگری که این امارت را به یاد می‌کرد، تر می خوش شده از حیوانات بود این صورتک های خوش شده در جا, جا این امارت به چشم می‌خورد و اسحاق آن مرد چاق و کم که انبوه سیبیلی بر پشت لب داشت هرگاه میهمانی به خانه میامد از داستان شکار یک به یک صورتک ها برای آنها قصه‌های طول و درازی تعریف میکرد و اما در کنار همه اینها همسری که زندگی را برای او دو نفره کرده بود زنی میان سال با موهایی تقریبا سپید دور از ذهن بود که در این سن و سال چرا چنین رنگ یک پارچهی به خود گرفته است قدی بلند و هیکلی خوشتراش همراه با صورتی زیبا آدمی را وادار میکرد تا بر آن چندی خیره بماند اما در کنار اینها روحی افسرده و نالان داشت بسیار کم حرف میزد نامش پرنس بود شاید تنها زمانی که او احساس خوشی میکرد زمانی بود که نامش را صدا می زدند.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 نمیدانست چه اتفاقی افتاده فقط کلمات زن را دوباره در ذهنش دوره می کرد زن گفته بود صاحب ساق میکایر را کتک سختی زده نمی توانسته که روی پایش به ایستد در حالی که به این حرف فکر می کرد زیر لب نام منجی را به زبان آورد و با تمام توان راه را پیش برد و سراخر به بالین میکایر رسید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 در حالی که آرام زیر گوش میکائیل میخواند که دوستش دارد زمین و زمان را از خاطر برد. بعد از یک روز سخت کاری دیگر همه خسته به سوی منزلگاهشان پیش بودند. پردگانی که به طول روز به سختی کار کرده حالا میخواستند که در گوشه آرام گیرند تا فردا آن همه کارهای باقی را به انجام برسانند. وقتی وارد اتاق شدند دیدند میکائیل اتاق را تمیز و مرتب کرده. با اینکه که در تنش هنوز احساس درد داشت اما به واقع توان دراز کشیدن و در جاماندن را نداشت نمیتوانست آرام بگیرد میگفت در روزی که چشم گشودم کار کردم و کار نکردن خیلی بیشتر خسته می میکند و امروز هم با تمام درد اتاق دوستان و همدردانش را تمیز و پاکیزه کرده بود آنها بی توجه یک به یک وارد شدن تا اینکه داوود گفت بدبخت امروز هم نتوانستی استراحت کنی. و میکایل پاسخش را با پوسخندی داد و سارایی که به سمت میکایل رفت و گفت چرا این کار را با خودت کردی؟ ما خودمان انجام میدادیم دادیم و سراخر همه دور میز جمع شدند. به دستور اسحاق امشب دو ظرف کمتر غذا به اتاق فرستاده بودند تا سارا و میکایل را تنبیه کند ولی داوود قبل از اینکه این موضوع را دیگران بفهمند دو ظرف اضافه کرد اما محتویات کمی غذا از هر ظرف آن را پر کرد و به سر میز آورد. همه گی به دور میز مشغول خوردن شدند. در همین بین داوود لب به سخنگو شد و گفت باید جواب این حرامزاده را میدادیم تا این گونه با ما مثل حیوان رفتار نکند. این بیشرف هرچه دارد از صدق سر کار کردن ماست. دانیال ضربهی از زیر میز به پایه زد تا خاموش شود. در حالی که چهره داوود کمی عوض شده بود، دست به زیر میز به سمت پایش برد تا جای ضربت را بمالد و در همین حین رو به دانیال گفت: چه میکنی؟ چرا هر وقت حرف میزنم این مرا خاموش میکنی؟ از چه میترسی؟ و دانیال که باز رنگ از رخسار برباخته بود، با اشارت چشم و ابرو به داوود فهماند که ساکت شود. ناگهان میکائیل گفت: بگویید امروز چه کسی را دیدم؟ همه متعجب شدند. میکائیل ادامه داد: امروز سرورمان را دیدم و همگی مشتاقانه به لبهای او چشم دوختند و میکایل اینگونه به سخن آمد امروز وقتی صاحب مرا وقتی چشمانم را بستم چهره معصوم و قدسی سرورمان در برابرم بود آرام نزدیکم میآمد، نگذاش با او سخن بگویم و سارا مشتاقانه پرسید چه داشت صورتش چگونه بود؟ و میکایلی که رو به سارا گفت مثال ماه درخشان بود با صورتی زیبا و دست نیافتنی وقتی به سویم آمد دست راست کرد و من را از زمین بلند کرد و بعد آرام گفت روز رهایی نزدیک است و من به زودی ظهور خواهم کرد جماعت با چشمانی پر اش به لبهای او چشم بوخته بودند و منتظرش بودند منتظر دیدنش، منتظر گفتن با او در همین میان داوود از سر سفره برخواست و گفت من میخواهم بخوابم.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 سقف‌های بلند، آویزه ها و تمثيل ها، خطوط و نقش‌های بسیاری بر دیوارهایش وجود داشت و مهرابی در پیش تا عالم دینی بر آن برای انسان ها موعظه کند. آنها را بشارت دهد و به راه راست هدایت نماید. این قصر های بزرگ خدا بر زمین تنها جایی بود که در آن صاحبان و بردگان کنار هم مینشستند و خدا را پرستش می‌کردند. مخالفت‌های زیادی از سوی صاحبان در باب این موضوع مطرح شد که باید جای این دعاها و سناها را تغییر دهند تا صاحبان به خانه مجزا و پردگان در سرایی دور از آنها به پرستش خدا مشغول شوند اما این اعتراض‌ها راه به جایی نمی‌برد و نه ارباب بزرگ و نه علمای دین هیچگاه به این امر راضی نمی‌شدند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 شاید به جرأت میشد گفت: همه بردگان در این ایام خاص به خانه خدا می آمدند و مناسک مذهبیشان را به جا می آوردند. اما تعداد کمی از صاحبان در کنار آنها حاضر میشدند و تعداد بیشتری از آنها چند صباحی بود که هیچگاه نمی آمدند و همینها شاید بیشتر از پیش جرقه ای بر دل بردگان میزد و آتشی روشن میکرد که صاحبان خدا ترس نیستند و پروردگار آری از زشتی آنهاست. امروز هم یکی از همان روزها بود دانیال، داوود، سارا و میکائیل و دیگر بردگان قلمرو اسحاق به پیش رفته و در خانه خدا حاضر بودند برخلاف دیگر صاحبان اسحاق همیشه در این روز خاص خودش را به خانه خدا می و ساعتها در کنار روحانیون مشغول پرستش خدا می شود. خانه خدایی که نزدیک به قلمرو او بود گوهرپاس نام داشت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 جماعت وردگان وقتی یعقوب را در برابرشان می‌دیدند که چگونه دست بر سرشان می کشید و گاهی بر دستانشان بوسه میزد، او را قدسی ترین و شریف ترین انسان زمین می‌دانستند و با تمام وجود عاشقش بودند. و هر روز که به خانه خدا می تمام مشکلات را به کناری میزدند و ساعتها به صحبتهای یعقوب گوش می‌دادند و یعقوبی که به درد و دلهایشان گوش می‌داد، و با آنها همدردی دردی و گهگاه باناله های آنان اش در چشمانش جمع میشد و به آنها امید میداد و آنگاه که لب به سخن از ناجی میگشود جماعت پردرد سر و پا گوش میشدند آنگاه که یعقوب از شمایل منجی میگفت از عظمت و بزرگیش از صبر بیکرانش که چگونه در تمام این سالها در انتظار ظهور و امر خدا نشسته حضار به سختی گریه میکردند و یعقوب که عشد در چشمانش جمع میشد، از روزهای خوش در پیش سخن میگفت. برایشان از روزی صحبت میکرد کرد که منجی از میان چاهی سر برون می و تمام زشتی ها را از میان برخواهد داشت اینجا بود که جماعت دوباره و بیشتر از گذشته عشق میریختند و آرمان و آرزوهایشان را با منجی و ظهورش گره میزدند. و باز هم یعقوب در ساعتهای زیادانان را بشارت میداد. پند و اندرز می کرد، از زشتی ها میگفت، حق دیگران را پایمال کردن ظلم به دیگران همه و همه را از این زشتی ها برحضر می داشت و سرآخر سخن را به آخرت میرسند. از منجی گفته بود و حال باید که از پروردگار بزرگ جهانیان می گفت از روزی که آخرت برپا خواهد شد و حق مظلومان از ظالمان گرفته می شود به آنها می گفت توشه برای فردا و جهان آخرت جمع کنید از نیکوکاران باشید این جهان فانی و زود است اما جهان در پیش رو جهان باغی است و برتر است کارهای خوب بکنید بدانید که در آن جهان انسانها بر اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد نه ثروت و صاحب و برده بودن و این گونان ها را به راه خدا بشارت می داد سراخر این مراسم هر کدام از مومنان کاغذی به دست می گرفتند و در دودل آرزوها و هرچه و هرچه که می خواستند از آن با منجی سخن بگویند را روی همان کاغذ می نوشتند.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 که منجی همه جاست و همه چیز را می بیند سر به هر جا که بخواهد می‌تواند برد او از آرزوهای شما با است و در حالی که اش در چشمانشان حلقه میزد، آرزوها را به میان چاه میانداختند. و با دلی آرام دردهای تسکین یافته از صحن و محضر خدا دور میشدند تا هفتهی تازه را آغاز کنند وقتی همه بردگان از صحن خانه خدا بیرون رفته بودند این اسحاق بود که با ای در دست به سمت یعقوب پیر می‌آمد و از او میخواست تا شفاعتش را نزد خدا ببرد و او را بیامرزد و آن کیسه پر از ذر را به یعقوب میداد و در حالی که از درب خانه خدا خارج میشد، زیر لب نام خدا را ذکر می کرد و به سوی قلم قلمرویش در پیش بود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 قصد همیشه فضای سردی داشت و اسحاق بیشتر روز را خارج از امارت می و معدود زمانی به درون قصد می عادت هر روزه اش این بود که به میان مراتع و مزاره برود و کار کردن بردگان را به نظاره بنشیند. با نگاهی بر آنان سیگاری بر لب بگذارد و دود کند و در میان این کار کردنها دنبال خطایی از جماعت باشد و بردگانی که با دیدن او بیشتر از پیش کار می‌کردند. سخت تلاش می تا خطهایی از آنان سر نزند که مورد خشم صاحب اسحاق قرار گیرند. امروز وقتی همه بردگان به سختی مشغول کار بودند، یکی از دوستان اسحاق به دیدارش آمده بود. در کنار مزرعهی که بردگان بیشماری در حال کار بودند، دو صندلی و سایبانی علم کرده و بردگانی آن دو را باد میزدند. چای می نوشیدند و درباره مسائل دهکده و بحثهای شخصی حرف میزدند.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 مطابق معمول نام کسی را نمی برد اما او را خوب به خاطر سپرده بود و همیشه او را قول بیابانی خطاب می کرد رو به دوستش گفت این برده ها هم حسابی از زیر کار در می روند و دل به کار نمی دهند مثالش همین قول بیابانی به اندازه سه سگا شیرده قضا می خورد اما ذرهی بخار ندارد و مسخالی شرف در وجودش نیست نگاه کن چگونه کار می کند دوستش گفت باید با آنها مهربان تر باشی؟ خیلی اوقات مهر و محبت و پاداش از چوبه بیشتر جواب می دهد. اسحاق به میان صحبتش آمد و با لحنی تمسخرآمیز گفت این سیاستی که تو پیشه کردی. دوستش سرش را پایین انداخت و سیگاری روشن کرد. چند زمانی بود که او در قرض و غله شدید افتاده بود.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 دوستش آرام گفت نه در حقیقت مقداری پول کم آوردم و مغروزم باید آن را باز دهم و با این پول می برای امسال حداقل در کار دیگری سرمایه گذاری کنم و شرایطم را بهبود ببخشم اسحاق گفت باشد کمکت می کنم فقط سند زمین و خانه را در گرویم بگذار و تا یک سال دیگر این پول را به من پس بده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 داوود با ضربه محکمی که به گردنش خورده بود توان چندانی در جان نداشت اما باز هم با تمام تلاش آرام از جای برخاست و در همین بین اسحاق با عصبانیت بیشتر ضربه دوم را بر سر او کوفت و داوود نقش بر زمین شد در این بین اسحاق فریاد زد از صبح کار کردن تو را زیر نظر گرفتهام همه از زیر کار در می‌روی یک بار به بهانه آب خوردن یک بار به بهانه دستشویی یک بار به بهانه درد و زهر برخیز و درست کار کن و به طویله میبرمد که در کنار دوستانت بخوابی به بزرگی خداوند قسم اینقدر تازیانت خواهم زد تا آدم بشوی یا بمیری داوود پس از خوردن آن ضربت دوم به سرش در حالی که از شقیقه خون به زمین میریخ بی حال افتاده بود اسحاق دوباره چند ضربت دیگر با چوب به تن و بدنش سد. هیچ از بردگان جرعت نداشتن جلوی این ضربات را بگیرند که سرآخر دوستش دستش را گرفت و گفت آرام باش ساق او که کاری نکرده اسحاق با عصبانیت فریاد زد تو دیگر سخن نگو رفتارهای امثال توست که این حرامزاده ها را رو کرده اینقدر برده آزاد کردی که به این خاک سیاه نشستی این از سابق به دور بود که دو صاحب در برابر برده ها با هم اینگونه صحبت کن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 دانیال و میکائیل به صورت به سمت داوود رفتند. داوود که خون از پیشانیش میریخت و تمام بدنش درد میکرد توان زیادی برای حرف زدن نداشت. در همین میان دانیال گفت: دیدی چه کار با خودت کردی برادر؟ چرا لجبازی می کنی؟ صاحب را نمیشناسی؟ او از زیر کار در رفتن بیزار است. در میان صحبتهایش در حالی که تکه از جامهش را پاره کرده و با آن صورت داوود را پاک می کرد، میکائیل گفت: خدا با ماست. ناجی ما سرور و سالار ما به زودی ظهور خواهد کرد و داد ما را از این ظالمان باز پس خواهد گرفت در بین صحبتش دانیال بلند گفت صاحب مرد بزرگ و است مگر نمی که هر دفعه به خانه خدا می آید و عشق می ریزد. در بین همین صحبتها بود که داوود حالش به جا آمد سراسیمه از میان دستهای آن دو برخواست و از آنجا دور شد به کمی دورتر از مزرعه رفت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 خداوندا از تو چیز زیادی نمیخواهم، هرگز دوست ندارم که صاحب شوم. میدانم صاحب بودن زشتی به بار خواهد آورد. میدانم تا چه حد مرا شبیه این دیف سفتتان خواهد کرد. اما بارلا ها از تو آزادی طلب میکنم کنم. نمی خواهم برده باشم. دوست دارم آزاد در امنیت زندگی کنم. خداوندا دوست دارم خودم بر زمین خیش کار کنم و حاصل دسترنج خودم را بخورم. بارلا ها آزادی میخواهم خداوندا ناجی کی به زمین ظهور خواهد کرد؟ آیا صدای ناله های مرا نمی شنود مگر مگر نیست که آزادی به ما فدیه خواهد داد؟ خدایا صدایم را نمی شنود در میان چاه خفته است؟ مگر یعقوب نمی گفت می شنود منتظر ازن توست؟ آیا تو هم نمی شنوی نمی خواهی مدد به ما برسانی؟ او در انتظار ازن توست خدایا کمک من کن؟ داوود در حالی که اش می‌ریخت یه گریز نام خدا و ناجی را فریاد میزد و ناگهان از هوش رفت و پشت همان درخت افتاد. صاحب ساق با اعصابی پریشان به سوی اماارتش در پیش بود خیلی به ندرت پیش می‌آمد که در این ساعت از روز به خانه برود در حالی که به سالن رسید خود را به سمت دیوار رساند و در برابر عکس‌ها به زانو نشست دستهایش را رو به آسمان کرد و زیر لب دعایی خواند با اعصابی خراب به تمثیل پیامبر چشم دوخت و چندی بعد پرنس در کنارش بود به او چشم دوخته بود و بی هیچ کلامی فقط نگاهش میکرد اصحاق گرمای تن او را در کنارش حس کرد برگشت و رو به پرنس گفت به کنارم بیا تا با هم کمی صحبت کنیم پرنس آرام به کنارش آمد و همانند او نشست در حالی که اسحاق آرام دستانش را به سمت پرنس میبرد گفت اینها مرا دیوانه کردند.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 این موعظه های گاه و بیگاه او در باب منجی را نمیتوانم بفهمم چرا او تا به این حد زمان های خود را صرف این مسائل میکند آیا ما به دنیا چیز دیگری میخواهیم آیا پیشرفت ما با این موعظه ها عملی است آیا کار کردن این برده ها باعث نمی شود تا زندگی بهتری در دنیا بسازیم مگر پیامبر والا مقاممان تا این حد از کار کردن و ثوابش نگفته بود مگر نه اینکه تمام اینها کلام خدا بود و ایشان فرمودند در زندگی مفید باشید و کار کنید پرنس فقط حرفهای های اسحاق را میشنید و هیچ کلامی به زبان نمی آورد وقتی دستان گرم اسحاق را بیشتر بر دستانش لمس کرد به سرعت دستش را کنار کشید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 اسحاق در حالی که از جا برمیخواست نگاهی به پرنس کرد و وقتی دید او باز هم ساکت مانده بدون گفتن چیزی از امارت خارج شد. داوود هنوز هم پشت درخت افتاده بود. ساعتی از رفتن او میگذشت و دانیال و میکائیل تمام وجودشان استراپ بود که داوود کجا مانده است. وقتی دیدند صاحب جانیست بران شدند تا در پی جستن او باشند و همان راه مستقیمی که داوود پیش گرفته بود را دنبال کردند.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 در همین حال بود که ناگهان دانیال مقداری آب را که همراه داشت به صورت داود ریخ وقتی به هوش آمد گفت خدا. میکایل سرش را در آغوش گرفت و گفت آری خدا از هیچ چیز نهراست خدا با ماست و در آغوشش گریه کرد. چندی بعد او را به درون کل ببردن تا آرام و سر تر شود. بعد از این اتفاق و آن روز داوود خیلی آرام و بیسر و صدا شده بود. کم حرف میزد. هر روز صبح که به سر کار میآمد به سختی مشغول کار میشد. هر از چندگاهی گاهی دانیال و میکائیل به سمتش میرفتند با او حرف میزدند و یا های خندهداری میگفتند تا حال و هوایش عوض شود اما داوود توجهی نمیکرد و این بیتوجهی های او باعث شد تا آن دو هم بیشتر به کار خود مشغول شوند و کم کم شرایط به حالت عادی و سابق بازگردد با این تفاوت که داوود آن داوود سابق نبود از شور و حرارتش کاسته شده بود. دائم در حال کار کردن بود و اسحاق در طول تمام روز به کار کردن برده ها نگاه میکرد و پس از آن روز توجهش بیشتر به داوود بود. بیشتر او را زیر نظر میگرفت و از کار کردنش حیرت میکرد. سرآخر میان بردگان گفت چه کسی میگوید چوب تر راهبر نیست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 دست به داخلش برد و بطری از شربت گوارا به سمت داوود برد و گفت این پاداش خوب کار کردن توست از همان شرابی می نوشی که صاحب ساق نوشیده است و بطری را به دستش داد و از آنجا دور شد داوود بطری را به دست گرفت چهرش برفروخته و در همین حال بود که با فشار محکمی بطری شیشهای در میان دستانش شکست و به زمین ریخت و خون از دستانش جاری شد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 نمی فهمیدن به طول تمام این روزها و در حال فکر و نقشه کشیدن است. دانیال و میکائیل در کنارش نشستند و میکائیل بعد از خوردن چند لقمه گفت برادر چرا با ما صحبت نمی کنی؟ ما دوستان تو هستیم. باید که با ما درد و دل کنی، هرچه در دل توس را با ما در میان بگذار و از غمهایت کم کن، دردت را بگو و خودت را سبک کن. داوود در حالی که بی تفاوت لقمه داد دانیال فریاد زد معنای این همه سرتکان دادنهای دادن های تو چیست دیر زمانی است که در پاسخ هر صحبت ما فقط سرتکان می میدهی در همین بین داوود ظرف غذایش را که هنوز کامل نخورده بود به کناری گذاشت و خاص از جایش برخیزد و برای استراحت به جایی دورتر برود که میکائیل دستش را گرفت و گفت داوود تو را به خدا قسم با ما صحبت کن داوود روزه سکوت چند ماهش را شکست و گفت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 داود کلافه و پریشان فریاد زد صاحب ماست یعنی چه؟ این حق را چه کسی به او داده است؟ چرا باید صاحب ما باشد و هر کاری که بخواهد با ما بکند؟ شما میترسید آری شما ترسیدید و کاری نکردید دانیال گفت این حرفا چه معنایی دارد؟ معلوم است که ترسیدین او صاحب به جان و زندگی ماست اگر در برابرش قد علم کنیم ما را خواهد کشت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 داوود فریاد زد بس کن چرا اباطیل به هم میبافی؟ یعنی او به خواسته پروردگار عمل میکند؟ یعنی آزار و ازیت ما شاید خاسته پروردگار باشد؟ نه او به ما ظلم میکند چون ما به او این اجازه را داده ایم این سکوت ما او را تا به این حد جریح کرده است میکایل به میان حرفهایش آمد و با لحنی آمرانه گفت وزیفه ما نیست که او را ادب کنیم این وظیفه منجی عالم است اوس که باید حق را بگیرد ما در انتظار ناجی بزرگ مانده و میمانیم تا روزی که حق ما را باز پس گیرد داوود که بسیار خشمگین بود چند باری به این سو و آنسو رفت گویی حرفی در گلویش مانده باشد چند مدتی است که میخواهد بگوید و حالا هم قدرت گفتنش را ندارد در حالی که سراسیمه و عصبانی بود چند بار لب به سخن گشود و گفت من و هر بار با گفتن من حرفش را قطع کرد و چند ثانیه‌ای بعد دوباره گفت من در همین حال دانیال گفت بگو تو چه کرده ای؟ داوود که به یک باره نیرویی در وجودش دمیده شده بود رو به آنها گفت از آن روز تا به حال هر روز و هر شب میان کار و غذا خوردن میان دردهایم میان همه و همه به این فکر میکردم. به خدا و آینش، به دنیا، به صاحبان، به ارباب به یعقوب، به ناجی در تمام این روزها به ناجی فکر می کردم و در انتهای تمام این فکرها از خود می پرسیدم چند سال از زمان آمدن پیامبر گذشته صد سال، هزار سال، چند سال است او آمده و از آن روزها ناجی خواسته که ظهور کند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 اگر نیامد چه ما به طول همه عمرمان در درد و عذاب سوخته ایم تمام آرزوهایمان را میان همان چاه انداخته و از رویش گذشته ایم آری من به اینها فکر کردم میخواهم حقم را از این جهان بگیرم من در انتظار ناجی عمر تلف نمی کنم. من به این خواب هزاران ساله فرو نخواهم رفت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 به سختی مشغول کار بود عرق میریخ و با تمام توان بیشتر و بیشتر کار میکرد و خیشتن را قرق در کار کردن کرد کتاب ناجی اثر نیما شهر سواری بخش چهارم روشنگری کمی دورتر جایی که دانیال و میکایی نشسته بودند هر دو حیران به زده به هم نگاه می کردند و درگیر صحبتهای داوود و افکار شک گرفته از این صحبتها غرق فکر بودند. چندی طول کشید. آنقدر طول کشید که دیگر بردگان به آنها گفتند که زمان کار رسیده و باید که برخیزند. آن دو که مات و مبهود بودند برخاستند و سر کار رفتند. زیر چشمی داود را نگاه می کردند. برایشان خیلی سخت بود. از روزی که به دنیا آمده بودند همیشه در گوششان از این مباحث دینی، خدا، پیامبر و ناجی سخن گفته بودند و با تک تک تار و آنها را می شناختند. لمس می کردند و در میان تمام سختی ها به آنان پناه می بردند و از آنها نیرو می جستند. و به درازای تمام عمر به امید ظهور ناجی زندگی می‌گذراندند و در دل آرزوی این آمدن بود که آنها را زنده نگه داشته و در این سالیان دراز کنون با چنین صحبتهایی روبرو نشده بودند که کسی با این سراحت در باب ناجی سخن بگوید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 تقریبا همه دهکده این افسانه را شنیده بودند که کمی دورتر وقتی یکی از صاحبان که بسیار ثروتمند بود و از جایگاه والایی در دهکده برخوردار در شبی که مصبوط فریادهای بلندی می کشید به روی ایوان قصرش آمد و یک ریز فریاد زد و به خدا و رسولش بی احترامی کرد آنقدر فریاد زد که صدایش را همه در دهکده شنیده بودند و وقتی همه به دور قصرش جمع شدند و او را در حال اربده زدن و بد و بیراه گفتن به خدا دیدن ناگهان آسمان ای کرد و این صاعقه مستقیم به جان صاحب افتاد چندی طول نکشید که او در این درد جان داد و به زمین افتاد هرچند این ها و این ها به طول عمر دانیال و میکایل نبود اما حالا که به آن فکر می کردند و به حرف داوود داود ربتش می دادند، گویی چند بار این اتفاق را به چشم دیدند و در آن روز زیر ایوان آن قصر بودند به گفته یه ساکنی ندهکده این افسانه مربوط به صدها سال پیش بود اما در ذهن بردگان به خصوص دانیال و میکائیل اینقدر نزدیک و قابل لمس بود که حتی از همین حرف زدنهای چند ساعت پیششان با داوود هم برایشان نزدیکتر و واقعی به نظر میرسید. کار روز تمام شده و بردگان پیش به سوی کلبه های خودشان در راه بودند و داوود باز هم بی‌اعتنا سایرین خود را به پشت میز رساند بدون اینکه با کسی حرف بزند غذایش را به سرعت خورد و سرآخر به میان تختش رفت تا بخوابد دانیال و میکائیل هم بعد از شنیدن آن حرفها از زبانش دیگر با او هم کلام نشدند و شاید حرف زدن با او را هم گناه می‌پنداشتند خلاصه که از ظهر آن اتفاق هیچ کدام حرفی نزدند البته نه فقط با داوود، حتی با خود و بین خودشان هم هیچ حرفی رد و بدل نشد سارا از همان ابتدای آمدن میکائیل و دیدنش با او حرف میزد دستش را میگرفت و سر سفره به چشمانش چشم میدوخت. از او هیچ واکنشی نمیدید در پاسخ تمام سؤالهایش تنها سر تکان خورده ای میدید و میکائیل حتی یک بار هم به سخن نیامد سارا نگران شده بود هر کار میکرد تا میکائیل به سخن بیاید ولی در این کار موفق نبود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 میکائیل خسته به روی تخت دراز کشیده بود. در قلبش احساس درد داشت. نفسهایش سنگین شده بودند. سنگینی دنیا را به سینهش حس می کرد. در همین حال نظار سارا دستانش را به پیشانی و گونه هایش کشید و بدون هیچ حرفی در کنارش آرام دراز کشید. میکائیل در خیال و رویایش دوباره چهره مردی را دید که این بار بلا فاصله در همان نگاه اول او را شناخت. سرورش بود، ناجی بزرگ جهان. آرام به پیش می آمد و زیر لب می گفت می دانم در عذابید روزگار سختی دارید اینها را می گفت و چشمانش خیص می شد ناجی با شمشیری در دست سر از تن صاحبان و ظالمان جدا می کرد و سوار بر اسبی از کنار مراتب و مزاره می گذشت در به کلوه بردگان را می شکست و زنجیرهایشان را باز می کرد و سوی آسمان ها و می کرد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 سارا در حالی که سعی در آرام کردن داشت گفت چه شده چرا اینقدر عصبانی هستی؟ و میکایل که گویی منفجر شده باشد گفت این داوود کافر همین دیوانه هر چه دلش خواست از خدا پیام آور پاکش و ناجی به ما گفت. داوود که این صداها را شنیده بود از جایش برخواست و به میانشان آمد. رو به تمام همدردانش گفت چه میگویی میکایل از تا به حال من کافر و دیوانه شدم چرا هزیان میگویی؟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 دوستان حرف من این است ما باید خودمان حقمان را بگیریم نباید به طول هزاران سال باز بنشینیم و در انتظار ناجی باشیم ظلم و زشتی را تحمل کنیم آیا شما کم در این زندگی عذاب دیده آیا تمام عمر عذاب نکشیدید؟ آیا بارها آرزوی مرگ نکردید؟ آیا سودا و آرزوی تان آزادی نیست؟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 از فردا صبح آن روز صحبت این کلبه و فریادهای داوود در میان دیگر کلبه ها و کم کم پس از گذشت چند روز میان تمام بردگان قلم روی اساق پخش شد. بحث اصلی آنها هم در همین باب بود. درباره ناجی، درباره زهورش، درباره دردها و مشکلات خودشان. درباره این عذاب سرشار که به طول تمام عمر با آن دست و پنجه نرم میکردند. از تقیان و فریاد، از آزادی، جمع هایی که در هنگام استراحت و غذا خوردن با هم از طعم شیرین آزادی می گفتند طعمی که آن را نچشیده ما به طول تمام این سالیان بارها و بارها آن را در ذهنها ترسیم کرده بودند اما داوود تمام وجودش زندگی در میان این رویاها نبود همیشه در حال نقشه کشیدن برای رهایی جستن از اسارت و بردگی بود بیشتر وقتش در میان کار کردن و استراحت و خواب در حال بار و پردادن به نقشههایش بود گاهی به این فکر میکرد که شبانه از پرچین های قلم رو بیرون برود و راهی را به دور از تا پیش گیرد خبر آن را داشت که چندی دورتر از دهکدهی خودشان جایی است که مردم در آن برده نیستند و همه می توانند آزادانه زندگی کنند. بارها و بارها به این فکر می کرد تا خود را زودتر به آن سوی مرزها برساند. میدانست اگر برود و گیر بیفتد راه برگشتی برایش نیست و این را هم میدانست که دهگده توسط ارباب اداره می شود و ارباب رفتار وحشیانه ای با بردگان فراری دارد. برده هایی که دورترها فرار کرده بودند در میان شهر بعد از شکنجه بسیار کشته می شدند و جنازه هایشان روزها در میدان شهر آویزان بود می دانست که ارباب در تمام شهر معمورانی گماشته تا شب و روز کشیک بکشند تا اگر برده ای خواست فرار کند او را دستگیر کنند و ارباب آنقدر به این نظام ساخت احترام میگذاشت که وقتی برده ای فرار می کرد مبلغ او را به صاحبش پرداخت می کرد و او را ر داوود در پی راهی بود که وقتی رفت دیگر بازگشتی در کار نباشد. بارها نخشه به ذهنش می رسید و با مرور آنها در ذهنش به کم و های آنان پی می برد و خلاصه با دور کردن بسیار راه درست را می جست. با تمام وجود به این راه ایمان داشت و مطمئن بود که این طریقت او را به آزادی می رساند. اما دو موضوع باعث می شد که او هرگز نخواهد به این راه جامعه عمل بپوشاند. یکی وجود صاحب اسحاق بود که به طول تمام عمر از او چینه بدل داشت از همان کودکی از دردها و رنجهایش از مرگ دیگر بردگانی که به چشم دیده بود و این را هم میدانست که در زمان خرید خودش صاحب اسحاق او را در ازای بدهی از پدر و مادرش گرفته و هیچ وقت نام آنان را نفهمید. داوود نمی توانست بدون گرفتن انتقام از اسحاق این قلم رو را ترک گوید و باید پاسخ زشتی های او را میداد. و اما دلیل دوم که خیلی فکرش را درگیر می کرد و دست و پایش را می آن خیلی دیگران بود آن سیل بی شمار از بردگان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 و همین بود که داوود با داشتن نقشه بزرگ در ذهن و رسیدن به آزادی نتوانست که برود و میان مزرعمان دو به کارش مشغول شد و باز هم درد را به جان خرید. میکایل از پیشترها افزده تر شده بود به سختی و اندک حرف میزد و تنها شبها در کنار سارا و آن هم به زور او چند کلامی سخم میگفت چشمان میبست و در رویا به امید دیدن ناجی ساعتها بیدار میمانند و زیر لب دعا می خاند. دانیال هم مثل سابق به کارش مشغول بود. گهگاه به فکر میکائیل میافتاد. حال نظارش را می دید و سر کار به عیادتش میرفت. با او هم کلام می شد اما میکائیل بیشتر از اینها ناراحت و پریشان بود. که بدین سادگی با کسی حرف بزند و بعد از مدتی دانیال از این رفتنها خسته شد و سعی کرد که زندگی خودش را به پیش برد. اما در خلوت به داوود و حرفهایش هم فکر می کرد اما جرأت نزدیک شدن به او را نداشت نمیتوانست که با او هم کلام شود هم از نگاه دیگران میترسید و هم از سرنوشت و خداوند قادر و ناجی بزرگ هم از خبرچینهایی که شاید خبر داوود و بعد از آن رفاقت آن دو با هم را برای صاحبان ببرند و هم در کنار اینها از میکائیلی که سخت در انتظار کسی بود تا دقت‌دلی‌اش را سر او خالی کند داوود به واقع تنها شده بود بعد از آن اتفاق و آن فریادها او به واقع در خلوت بود همه دور را خالی کرده و حتی کسی حاضر به رویارویی با او هم نبود حتی بعضی ها به او لعن و نفرین هم میگفتند و داوود که بیتفاوت به گفته های آنها در حال پیشبرد اهداف خود بود شاید خیلیها با دیدنش فکر میکردند که او همه چیز را از خاطر برده و به چیزی به جز زندگی میان قلمرو اسحاق فکر نمی‌کند اما شبی و اتفاقی همه چیز را عوض کرد داوود از خیلی وقت تا پیش نقشهاش را کشیده بود و آن شب اتفاقی او را واداشت که حتما باید این کار را همین امشب عملی کند وقتی همه خواب بودند درب کلبه را آرام و بی صدا بست و به آرامی خارج شد از میان بوته ها گذشت و خودش را به مزرعه رساند وقتی از مزرعه بیرون شد به مرتع بزرگ رسید دور تا دور قلمرو اسحاق را سیمهای خاردار گرفته بود و درب بزرگی که چندین قفل داشت و باز کردنش تقریبا غیر ممکن بود از این رو داوود مجبور بود از میان سیمهای خاردار رد شود با تمام وجود به هدف بزرگی که در سرداش فکر می کرد و با ایمان قلبی از میان سیم های خاردار گذشت قسمتی از بدنش به سیم ها گیر کرد و تنش را زخمی کرد اما آنقدر عمیق نبود که خطرناک باشد آرام و با توجه کامل به همه جا از پشت خرمنهای دهگده به پیش رفت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 و به دوستش خاطر نشان می کرد که باید با یعقوب پیر صحبت ها کند وقتی داوود اینها را میشنید جرقه ای به جانش افتاد و گفت امشب حتما باید بروم و حال که موفق شده بود میان خانه خدا بود در گوشهی و نزدیک ترین جای به محراب خودش را مخفی کرد از کمی یعنی دورتر چهره صاحب اسحاق و یعقوب را در کنار هم دید لبخندی از رضایت بر لبان داوود نقش بسه بود خودش شاه آرام آرام با اندو نزدیک می کرد و سعی در گوش دادن به حرفهایشان داشت صاحب ساق عصبانی بود و رو به یعقوب می شما هیچ کاری برای ما نمی کنید این چه معزه است؟ این چه صحبت است؟ شما فقط از خدا و ناجی حرف می زنید؟ ما چه می شود؟ یعقوب پیر گفت میفهمم پسرم حرفهای شما را میفهمم اما ما وظیفه ای داریم که آن را ارباب هر سال به ما محول میکند و خودش تعیین میکند چه حرف های را کی و کجا بزنی اسحاق فریاد زد یعنی ارباب هیچ از دقدقه های ما نمیگویند پدر مگر نه اینکه ما باید پول فراهم آوریم تا هم ارباب بتواند دهگده را اداره کند و هم پیشرفت هایی که میخواهیم برایمان به بار بیاید هم از این پول به شما عالمان دینی بدهیم تا راه و طریقت خدا را پیش ببرید اما مگر این ممکن است شما شبان روز از آخرت و ناجی میگویید که بردگان کار کنند با این حرفهای شما آنها فقط متوش میشوند و کار نمی کنند اگر آنها کار نکنند ما چگونه پول به دست بیاوریم تا شما و ارباب را سیراب کنیم یعقوب در حالی که روی صندلی نشسته بود گفت پسر ما نمیتوانیم از دستورات الهی حرفی نزنیم. اسحاق گفت پدر من حرفم این است آنها را برای کار تشویق کنید درد ما کار نکردن آنهاست یعقوب گفت بله میدانم. اما ساختار صحبت ما را ارباب مشخص میکند ما سر خود نمیتوانیم چنین کاری بکنیم هفته دیگر قرار است ارباب خودش به همراه تمام عالمان دینی و بزرگان و صاحبان دهکده در جلسه شرکت کنند درباره بهتر شدن اوضاع پیشنهاد دهند تو میتوانی هفته دیگر اینجا بیایی یا حرفهایت را بزنی داوود که قلبش تون میزد بعد از شنیدن حرف آنان خودش را آرام به پنجره پشت سرش رساند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 حتما تجربه کسب کرده بود که دیگر تنش را مجروح نکرد سری خودش را به پشت درب کل رساند وقتی درب را باز کرد دانیال گفت کجا رفتی دیوانه؟ نگاهش به زخم و تن خونین داوود افتاد همانگونه با ترس به زخمش نگاه میکرد و گفت داوود با خودت چه کردی؟ چه بلایی سر خودت آورده ای? در حالی که داوود آرام دراز می کشید لبخند رضایتمندی به لب داشت گفت دانیال حقیقت را جستم. دانیال در بالای سرش مات به زخمش چشم دوخته بود و کمی بد تکه پارچهای با کمی آب آورد تا روی زخم را بشوید بعد از تمیز کردن زخمش وقتی خاص با او حرف بزند دید داوود آرام در حالی که لبخندی به گوشه یه لب داشت خوابیده است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 و او را به سمت میکایل برد و در کنارش نشست. میکائیل با اخم‌هایی در همسرش را بالا کرد و نگاهی خشمگین به داوود انداخت. داوود گفت: سلام برادر. امروز میخواهم با شما حرف بزنم. حرفهای مهمی برای گفتن دارم. میکائیل بر آشفت و از میانشان بلند شد و غرغر زنان رفت. دانیال گفت: او دیگر حتی حاضر نیست نام تو را بر زبان بیاورد. چه توقعی داری بگو دیشب شب کجا رفته بودی؟ داوود که کمی دمغ شده بود گفت هیچی به هواخوری رفته بودم. از کنار دانیال بلند شد و رفت. تمام روز را مثال سابق بردگان کار کردند محصولات را جمعوری کردند و سراخر شب همگی به میان کلبه رفتند و به دور میز نشستند. داوود، دانیال، میکایی، سارا و بقیه بردگان به دور میز نشسته و طبق عادت قبل از غذا میکایی دعای خواند و از خدا بابت تمام نعماتش تشکر کرد.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 تو به دنبال آشوب و تقیان میگردی و ما ای به شنیدن معزه تو نداریم ما هر آنچه که باید در زندگی بدانیم را میدانیم و هر هفته در روزی مشخص معزات را از زبان یعقوب پیر میان خانه خدا میشنویم دیگر نیازی به حرف های تو نیست داوود فریاد زد دوستان من دنبال تقیان و آشوب نمیگردم من میگویم ما باید از چنگال این ظلم رها شویم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 میکایل که خشمین شده بود چند باری خاص فریاد بزند که میان همین دست و پنج نرم کردنها با خیش داوود ادامه داد دوستان من من دیشب از میان دیوارهای قلم رو گذشتم خودم را به گوهر پاس رساندم و گواه حرفهایم است که از سیم خاردارها بر تنم مانده است دانیال تو که دیشب مرا خونین در اتاق دیدی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 کم کم این صحبت ها از دل گرم صاحب اسحاق بیرون رفت و دیگر بردگان دهکده هم کم و بیش از این اتفاقات باخبر شدند مطرح شدن این موضوع باعث شده بود تا بردگان احساس شجاعت بیشتری کنند آن همه سکوت دیروز را بشکنند و امید داشته باشند اخبار ای به گوش می رسید در فلان مزرعه وقتی صاحبی در حال کتک زدن بردهاش بود با سیلی از بردگان روبرو شده که او را به کناری پس زدند یا در فلان جای این دهکده وقتی اربابی به یکی از ها دستور داده بود که دیگر برده را شلاق بزند او تمرد کرده و تن به زدن همدردش نداده است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 از بردگان زیادی که از این جهنم گریخته و حال در آزادی در دهکده دورتر از اینجا که به طول تمام عمر قبله آمال تمام بردهها بود زندگی میکنند. همه با هم ساعت به نقش آنان در هوای آزاد آن دهکدهی زیبا که همه چیزش برایشان دوست داشتنی بود چشم میدوختند و حسرت میخوردند. و داوودی که در تمام این مدت در قلم صاحب اسحاق به اخبار ریز و دروش گوش میداد. فکر میکرد و باز هم فکر می کرد. در تمام این مدت حتی لحظه ای هم فکر فرار و رسیدن به آزادی در ذهنش خطور نکرده بود و بیشتر به روز موعود فکر میکرد. به روزی که تمام حرفهایش را به میکائیل و دیگر بردگان بفهماند. در این مدت میکائیل و داوود حتی کلمه ای هم با هم صحبت نکرده بودند. اما دانیال همیشه خودش را به کنار این دو می رساند با آنها گرم صحبت می شد البته گرم صحبت کردن با آنها که نه تنها خیشتن صحبت می کرد و معلوم نبود آنها اصلا حرفی می‌زنند یا نه اما مشخص بود که همه دنیای جدیدی در پیش رو می‌بینند و اضطراب آن روز موعود برای میکائیل و داوود بیشتر از همه بود در یکی از همین شب‌های پر استراب بود که سارا به بالین میکائیل آمد و با او صحبت کرد میکائیل آیا به حرف های داوود ایمان نداری؟ آیا فکر نمی کنی که او راست بگوید؟ میکائیل در حالی که خودش را به خواب زده بود چیزی نگفت. سارا ادامه داد: به نظرت ما نباید خودمان برای خود کاری بکنیم؟ آیا این همه سکوت اینها را تا به اینجا گستاخ نکرده است؟ خاطرت هست میکائیل چه روزهای سختی را کنار هم در این زندان گذراندیم؟ چه صحنه‌هایی که ندیدیمان همه ظلم هایی که به ما روا شد. الیزابت را به یاد میآوری که چه کودک زیبایی داشت خاطرت هست چگونه فرزندش را از او جدا کردند؟ یادت هست مثل دیوانه ها شده بود، مدام گریه میکرد و حرفی نمیزد چگونه آرام و به هیچ حرفی مرد و آب از آب تکان نخورد. هلن را به یاد داری؟ به خاطران اشتباه کوچک، به خاطر کمی شور شدن غذایش چگونه ساعتها زیر دست و پای صاحب سحاق و خورد و صدای فریادهایش هنوز در گوشم تنین انداز است. آن شلاق زدنهای صاحب سحاق را هنوز میان کابوسهایم میبینم. سارا حرفهایش را تمام کرد و آرام پشت در پشت میکائیل چشم است و که در میان افکارش به یاد ابراهیم افتاده بود.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 در حالی که آرام عشق می تا صدایش را کسی نشنود چند نام خدا را برد و آرام چشمانش را بست. به دنبال تمثیل ناجی می گشت که کمی بعد با صورت الیزابت روبرو شد. آن زن که عشق می ریخت و سر به دیوار می و فرزندش را از او دور می کردند. وقتی به صورت فرزندش چشم نخت دید ابراهیم است که به او نگاه می کند و فریاد کمک سر میدهد و میکایلی که بین همین کابوس ها عرق می‌ریخت میریخت و آرام جریه می کرد. روز معود فرا رسید: میکائیل در میان کار باری دست و پایش لرزید. به سختی می روی پای بند شود. مینشست و بعد از خوردن جرعه آب دوباره به کارش مشغول میشد. همین رفتارهایش باعث شد که اسحاق فریاد بزند و عصبانی بگوید تن لش به کارهایت برس این فریادها او را محکم تر و سعی می کرد با استرابش هر طور که شده کنار بیاید داوود خیلی مسمم اما شاید هم کمی استراب داشت لیکن لحظه همان را بروز نمیداد. داد ها را میشه مرد تا شب فرار و بتواند به وظیفه سنگینش جامعه عمل بپوشاند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 تنها کسانی که در کنار آن دو ایستاده دانیال و سارا بودند که آنها را در آغوش گرفته و آرزوی سلامتی برایشان میکردند بعد از در آغوش گرفتن و خدافضی با آنان به انتهای قلمرو اسحاق رسیدند و وقتی به سیم خاردارها نزدیک شدند داوود که تجربه گذشتن از آن را داشت به میکائیل گفت سب کن تا سرای آن را باز کنم تا بتوانی رد شوی و میکائیل در انتظار ماند و بعد از این کمک هر دو رد شدند و پیش رفتند داوود در پیش بود و میکائیل به تعقیبش میرفت. بعد از گذشت چند زمانی که در راه بودند، میکائیل گفت: معلوم هست کجا میرویم؟ اصلا از انتهای این راه خبر داری؟ داوود با لحنی آرام گفت: آری دانم کجا میرویم. و مسیرش را خوب بلدم. اما خانه خدایی که امشب در آن جمع می شوند از اینجا دورتر است. فقط آرام پشت سرم بیا، کمی دیگر که راه برویم به آنجا خواهیم رسید. به راه افتاد. میکائیل هم کماکان به تقریبش بود.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 بعد از کمی جست داوود توانست راهی به وجودت. دیواری که مقداری از آجرهایش ریخته و راه کوچکی به داخل باس کرده بود. وقتی وارد شدند دیدند که چه جماعت بیشماری از صاحبان و علمای دین در میان خانه خدا هستند. آنها بدون همراهی هیچ برده به خانه خدا آمده بودند و حال گویی انتظار میکشیدند. میکیل و داوود در گوشه که مشف آنها باشد و بتوانند به حرفهایشان گوش کنند جا گرفتند. چند دقیقه از این استقرار و استراب نگذشته بود که همه از جای برخاستند و به نشانه احترام در برابر مردی کرنش کردند از میان عکسها ها چند باری میکایل و داوود او را دیده بودند اما بلند قد از تصویر ذهنیشان به نظر می رسید همان مرد لاغرندام درازقامت با کلاهی بلند بر سر وارد شد همه در برابرش تعظیم کردند و درود به ارباب فرستادند ارباب در بالای مجلس نشست و پس از احوال پرسی مختصری با بعضی از آنها در انتظار شروع بحث. بود. در میان این جمع داوود در پی صاحب اسحاق گشت و بعد از کمی کاوش او را هم جست که در گوشه ای نشسته بود و میکائیل که توانست یعقوب پیر را نیز در این جمع پیدا کند. بعد از نشستن ارباب هم همه این میان مهمانان در گرفت هر کدام با دیگری صحبت کردند که با اشاره کوچکی از سوی ارباب همه ساکت شدند. هرباب با صدای کلوفتی که داشت گفت دلیل این همه بلوا در دهکده چیست؟ چرا پس این بردگان تا این حدما را به دردسر انداختند؟ یکی از صاحبان به سخن آمد که سرورم اینها از کوتاهی مردان دین است آنها باعث شدند که اینگونه بلوایی به میان آید یکی از علمای دینی گفت چرا ندانم کاری خودتان را بر دوش ما می در همین میان یکی از دیگر صاحبان گفت ما چه کمکاری کردیم؟ در پاسخش عالم دینی این گونه جواب داد که شما هستید که با سحلنگاری خشمهای بیهوده و تنبیه‌های نابجا این بردگان را این حد به شور و تقیان واداشتید. اسحاق از همان گوشهی که نشسته بود جلوتر آمد و پس از اجازه از ارباب گفت اینها همه تقصیر شما مردان دین است شما که به جای موعزه بردگان برای کار کردن بهتر آنان آنها را موعظه به ناجی میکنید دلیل این بلوایید معنای این ناجی چیست؟ مگر دور از این است که ما ظالمی مناجی خواهد آمد و ما را از میان برخواهد داشت شما با گفتن اینها بردگان را به آینده ای پرامید میرسانید یکی از علمای دینی صحبتهای صاحب ساق را برید و گفت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 یکی از صاحبان فریاد زد بله ما میخواستیم. اما ما به این هم معتقدیم که پروردگار کار کردن را یکی از ارکان دین می داند و این کار کردن و عجش آنها را به خدا نزدیک می کند منزلگاهی پاک با در جهانی دیگر خواهد داد و دا باعث می شود که آنها بهتر کار کنند و ما محصول بیشتری بفروشیم و با درامدش هم به ارباب خراج دهیم و هم به شما آلمان دین در راه پیشبرد دین کمک کنیم اما شما از این وظیفه شانه خالی کردید و بردگان را به کار تشویق نمی کنید و همیشه در خانه خدا از ناجی و آیند به دور از ظلم حرف میزنید و این آنها را جریحتر کرده است.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 ما همه در برابر یک خدا سجده می کنی به یک دستور پایبندیم و پیامبرمان یکی و قدسی است این بزرگ مرتبه و سالارمان راهی برای برایمان به وجود آورده طریقتی که هم راهگشای این دنیا و هم راهگشای جهان دیگر باشد او به ما آموخته داد در تمام عمر راهی بجوییم تا زندگی بهتری بسازیم و مشکلات پیش رویمان را مرتفع کنیم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 امروز که شرایط دهکده تا این حد خطرناک شده و بوی طغیان بردگان به گوش می رسد وظیفه دارم تا این راز پنهان میان خاندانمان را برملا کنم میدانید آخرین حرف های پدرم وقتی در بستر مرگ بود و میخواست اربابیت را به من واگذار کند چه بود او به من گفت که از پدرش و پدرش از پدرش و همینطور اجداد ما از یکدگر هر کدام در پایان عمر گفتند که دین خداوند بزرگ دین زندگی است. خدا و رسولش فرمودند برای ساخت جهان بهتر باید هر روز از دیروزتان متفاوت باشد و طریقت تازه ای را پیش بگیرید او گفت زمانی که در دوردست ها جدم در شرایط سختی مثل امروز به سر میبرد از افسانهای ای مدد برد وقتی تمام برده ها مثل امروز سر به شورش بر می داشتند و برای تغییر جهان خودشان خودشان را آماده می کردند، او از آن افسانه که کم و بیش در میان مردمان رایج بود مدد برد و ناجی را به جهان هدیه داد میکائیل سر جایش خشک شده بود و داوود هم حال بهتری نداشت در همین بین ارباب ادامه داد آری جدم جد این گونه به جهان ناجی را هدیه داد آن شاهها آن دعا کردن ها آن انتظار ها نه اینکه این, این افسانه ای از زبان جد من باشد نه اینکه این ها دور از واقع است نه هیچیک از اینها که جهان از آن خداوند بزرگ است و هر کاری به ازن و اراده اوست، اینها دور از واقع نیست و اینها حقانیت جهان است اما دین ما دین خرافه نیست دین پیشرفته است دین کار کردن است آن روزها جد دمین را صلاح دانست و حال ما باید بدانیم که این داستان گریه ای از مشکل ما باز نخواهد کرد باید طریقتی تازه بجوییم دین ما دینی پویاست نباید در جا بمانیم و خیشتن را محصور داریم همان گونه که ارباب داشت صحبت میکرد داوود روی برگردان تا میکایل را ببیند رنگ میکایل مثال گچ دیوار سفید شد تکانی نمیخورد داوود چند ضربه آرامی به صورتش زد و باز هم واکنشی از او ندید سراسیمه و حراسان شده بود چند بار آرام اسمش را صدا زد بدنش سرد بود، او را آرام آرام به سمت همان دریچه برد، دریچهی که رویش باز بود، و از آن فارد شده بودند. آنقدر صاحبان و آلمان غرق در افکار پس از شنیدن حرف های بودند که کسی حواسش دو نباشد. داوود میکایل را به سمت سوراخ برد، بالاخره حال میکایل به جا آمد. داوود به چشمانش نگاه کرد و با شوقی وصف نشدنی گفت، دیدی برادر، خودت شنیدی؟ آیا ما نباید خودمان حقمان را بگیریم آیا آزادی حقمان نیست؟ وقتی با شغ با میکایل صحبت میکرد از درون حس زد و نقیزی کرد ضربان قلبش زیاد شد صدای پایی میشنید در همین حال با ضربتی میکایل را از درون حفره به بیرون انداخت و گفت برو و به همه بگو که چه ای جملاتش هنوز کامل نشده بود که یکی از صاحبان دست به گریبانش انداخت او را از زمین بلند کرد داوود ضربتی به هیکل تنومند او زد مرد بلند فریاد زد بیایید یکی از پردگان اینجاست با فریاد او همه دویدند و پیش آمدند میکائیل که آن سوی دریچه افتاده بود هراسان بود و نمیدانست کند. به یاد حرفهای ارباب افتاد جملات داوود در گوشش تنین انداز شد در همین حال برخاست و به سرعت دوید با سرعت به سمت قلمروی اسحاق در پیش بود جماعت آلمان و صاحبان دوروبر داوود را احاطه کرده بودند صاحب ساق از میان آنها پیش رفت تا فرد مسخور را ببیند وقتی چشمش به داوود افتاد فریاد زد این داوود است این حرامزاده خرابکار است با ضربه های مداومی به صورت او کوفت و او را کتک زد میکایل با سرعت در هوا به پرواز درآمده بود خودش را به پیش می برد چهره همه دوستان و بردگان در برابرش بود در راه چند باری سیمای ناجی را دید اما این بار نزیبا بود نه های یک دستی داشت صورتش سوخته بود و مثل دیگر بردگان به چشمش می آمد. به سرعت پیش می رفت و خودش را به قلم رو می رساند بعد از کتک وحشیانهی که به داود زدن دریچه را جستند فریاد زد. توطعه در قلمرو من در حال وقوع است بیرون رفت تا خودش را به قلم رو برساند. ارباب بزرگ گفت این برده را دار بزنید و جنازاش را در میدان آویزان کنید. این از فراری ها هم بدتر است. داوود با صورتی خونین از دریچه به بیرون نگاه می در دلش قوغای بود. میکائیل سیمخاردارها را رد کرد و خودش را به کل رساند درب را باز کرد و به میان کل وارد شد. در کمال ناباوری همه از جایشان برخاستند همه بیدار بودند و منتظر همه به لب‌های میکائیل چشم دوخته بودند سارا خودش را به میکائیل رساند اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند میکائیل فرگاد زد ناجی آزادی است شور و همه ای در به شک گرفت دانیال که به سختی حراسان بود گفت میکائیل داوود کجاست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 پرنس آرام بالای سرش نشست به چین و چروکهای صورتش چشم دو بود بیرون غص بلوایی به پا بود بردگان همه در پیش بودند به سوی دربهای غص خود را رساندند و با زربه درب را باز کردند داخل شدند هنوز همه آنها به داخل غص نرفته بودند که دار و دسته ارباب وارد قلم روی شد و تعداد بیشمار بردگان را در حال ورود به امارت دیدند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 میکائیل همه را آرام کرد و رو به پرنس گفت اسحاق کجاست پرنس بدون اینکه چیزی بگوید به سمت اتاقی که در آن اسحاق افتاده بود رفت و در را بر روی خیش و همسرش بست بیرون قصد ارباب راه میرفت و فکر می کرد و سربازانی که منتظر دستور او بودند تا به درون قصد بروند و بردگان را لط و پار کنند ارباب دستور داد قصد را به آتش بکشید و دور تا دور قصد بشینید و هر بردهی که بیرون آمد را با تیر بزنید. هیچ تن از این شورشیان نباید زنده از این محلک بیرون بیاید. زنده ماندن آنها باعث شورش بیشتری در دهکده خواهد شد. یکی از سربازها رو به ارباب گفت سرورم ولی فکر کنم صاحب اسحاق و همسرش هم درون قلعه باشند. ارباب در حالی که به آسمان نگاه می کرد گفت، همواره بر پای شریعت پروردگار بزرگ شهید میخواهد و خداوند اجر بزرگی به آنها خواهد داد با این گفته ای او سربازان سرتاسر سر قصر را به آتش کشیدند زبانهای آتش به درون قصر آمد بعضی در همان اول ترسیدند و با دیدن آتش به سوی پنجره ها و دربها شتافتند و تومه گلوله سربازان شدند میکایل مستصل ایستاده بود پس از چندی فریاد زد آرام باشید صبر کنید و کمی بردگان را آرام کرد دانیال مسترب در گوشهی نشسته بود و همه امیدش را از دست داده بود به این سو نگاه میکرد و هر ثانیه نقش سوختن خود را در برابر خیش تصویر میکرد سارا در کنار میکایل به او چشم دوخته بود و در زن زندگی رها در کنار همسرش را تصویر میکرد در همین اوزا و احفال بود که از میان سالون صدای بردهی همه را به خدا ورد. او فریاد میزد. راه را جستم. راه را جستم. با شنیدن صدای او همه به سمتش دویدند و دیدند که دقیقا زیر تمثیل پیامبر و های خانوادگی اسحاق دریچهی جسته و شادمان و سرمست به چشمان دیگران چشم دوخته است. میکائیل به سرعت در پی فراهم آوردن همه بردگان در کنار هم شد. به هر سو می رفت و آنان را به سمت هم جمع کند و سارا که حال همراه او در پی یک پارچه کردن همدردانش بود پرنس در کنار اسحاق به او چش دوخته بود آتش همه را گرفته بود و پرنس چش میان چین و چروکهای اسحاق به طول یک عمر نگاه می کرد و در پی جستن شباهتهای او با پدرانش می گشت آتش زبانه می کشید و نزدیک و نزدیک تر می شد.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 در ذهن چند باری به داستانهای گوناگون فکر کرد و سرآخر این تویان را به آتش سوزی بدل کرد برای فردا و فرداهایش و زندگی آینده خیشتن برده ها و تمام کائنات دعا کرد و باز مدام ذکر گفت جسم بی جان داوود در میدان شهر آویزان بود و به درازای هزاران سال دهکدهی در رنج و عذاب میسوخت و کسی دم بر نمی آورد. صدایی نمی و نگاهی به چین و چروکهای این دهکده باستانی داشت، داشت میسوخت، تنش خاکستر می شد و حتی سانیه ای به اطراف نگاه نمی کرد و دست به آسمان در انتظار منجی نشسته بود منجی از جای برخاست حالا به این سو و آن سو میدوید دور تا دورش را آتشی فرا گرفته بود و انسانهای بیشماری که در این آتش میسوختند و لب بر نمیآوردند. در میانشان زنی چشم چین و چروک های مطفون بر خاک سوخت دوخته بود و حتی از جایش بلند هم نمیشد. و ناجی که چند بار دست به دستانش داد او هیچ حرکتی نکرد اوی به این سوختن و تقدیرش اعتماد کرد و با آن خو گرفته بود و سراخر ناجی که از میان پنجره به بیرون پرید و از ارتفاعی به زبین افتاد و تومه آتش گلوله سربازان شد کمی بعد مردی که صورتی دراز و کشیده داشت نقش صورتش همچون تمثیل چند هزاران ساله‌ای به نظر می‌آمد به بالای سر ناجی آمد و دوباره همان گفتار پیشین را زمزمه کرد و زیر لب مدام ذکر گفت در کمی دورتر کسی تمام این نبردها فریادها و سوختن ها را نظاره می کرد و لب از لب نمی گشود و جماعتی که با تلاششان سنگریزه از میان بر می داشتند، با دستان خالی دیوار های سنگی را تکان می دادند و با تکه بر قدرت خودشان از میان بیراهه راه می پیش می و خیلی دورتر از این روزگار با تلاش بسیار طریقتی جستند راه کی پیدا کردند و نوری از میان ظلمات دیدند. باز هم دستها را به هم دادند دیوارها را به کناری زدند و با تمام تلاش راه تازه را بزرگتر و قابل عبورتر کردند. یکی پیش رفت و دست دیگران را گرفت تا یک به یک با تلاش خود و دست در دست هم دادن از میان سختی ها و آتش و زلم ها و اسارت‌ها سر برآورند و آنگاه که همه در ساحلی امن ایستاده بودند با فریاد بلندی به جهانیان گفتند ما آزادیم آزادی از آن خویشتن ماست